شمس قونی شعبان 643 آدم وراج مگر بس می کنند یک ریز حرف میزنند طبیعتشان اینطوریست است از وقتی به قونیه آمده آنقدر داستان درباره هم ساختند که نگو و نپرس قیبت کردن گناه کبیره است. اما بیشتر آدمها این را نمیدانند. اگر هم بدانند خودشان را به ندانستن می میزنند. حالان که خدا غیبت کردن را به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه می کند. توصیفی دهشتانگیزتر تر از این مگر ممکن است، اما باز هم کفایت نمی کند. انسان در زیان است، در خسران است، در زن است، نمی تواند از غیبت کردن دست بکشد. حالان که فقط یک کلمه بد که در باره یک شخص بر زبان جاری می شود، می چرخد و میگردد و به طرف آدمی برمیگردد می گردد که آن را بر زبان آورده. آن هم در زمان و مکانی که اصلا انتظارش را ندارد. خیلی عجیب است، حساب بقیه گناه ها را به جز کردن دارند، شرابخوار را تازیانه میزنند زناکار را سنگسار می کنند، کلاه برداری کردن، مال یتیم را خوردن، دزدی کردن، به ناموس دیگران چشم داشتن، خلاصه هر گناهی جزایی دارد. اما معلوم نیست چرا کسانی که غیبت میکنند مجازات نمیشوند حالانکه غیبت کردن پشت سر کسی حرفهای ناروا زدن گناهی بس بزرگ است مگر این را نمیدانند روزی از روزها مردی دوان دوان پیش صوفی میآید و با عجله می گوید بابا درویش دیدی توی کوچه یک دست خدمتگار روی سرشان تبق اند و دارند میروند صوفی در کمال آرامش میگوید به من چه به من ربطی ندارد مرد میگوید اما آن طبقها را دارند به خانه شما میبرند صوفی هم بر برمیگردد و میگوید در این صورت به تو چه به تو ربطی ندارد متاسفانه در این دنیا چشم بیشتر مردم دنبال طبق دیگران است از خود میپرسند فلانی چقدر پول دارد مال و املاکش چقدر است به تو چه مرد سرت توی کار خودت باشد تو به راه خودت برو من هم به راه خودم آخر سر هم تشخیص کردن اینکه راه تو درست بوده یا راه من نوظیفه من است نوظیفه تو وقتی داستانهایی را که درباره من ساختند میشنوم، در برابر قدرت تخیلشان سر تعظیم فرود میآورم تسلیم حتی شنیده‌ام کسانی هستند که فکر میکنند سرکرده مخفی حشاشین هستم. بعضیها کار را به آنجا رسانده‌اند که میگویند پدرم آخرین پیشوای اسماعیلی قلعه علموت بوده و به من جادوگری یاد داده. میگویند چنان جادوهای وحشتانگیزی بلدم که اگر توی صورت کسی فوت کنم جا در جا جان به جان آفرین تسلیم می کند مولوی را هم به کمک جادو به خودم وابسته کردم می گویند هر روز صبح آشی را که با تیغ خار پشت، پوست مار و سیرابی خفاش پخدم به خردش می دهم او هم پس از خوردن آش هرچه چه به گویم گوش می کند گوشم از این حرفا پر است میشنوم و میخندم چه کار دیگری از دستم بر می آید. طوفان و موج برای صوفی ضرری ندارد مگر برای مرقابی مهم است که سیل همه جا را بگیرد اما اطرافیانم نگرانند به خصوص سلطان ولد میپسندمش خیلی جوانمرد است مطمئنم روزی میرسد دست راست پدرش میشود. کیمیا هم هست آه یه دوست داشتنی میدانم نگرانم است اما فکر کنم شایبه ها بیش از همه به مولوی صدمه میزند. او هم از تهمت ها و افتراها سهمش را میبرد. من به این جور چیزها عادت دارم اما مولانا چطور وقتی میبینم حرفهای نادانان قصه دارش میکند میخواهم سر به کوه و بیابان بگذارم مولانا خیلی خداپرسته است خیلی آدم خوبی است اما درون من هم زیبایی هست هم سشتی. من آدم بی و بی پروائیم. برای همین راحت تر می توانم زشتی دیگران را تاب بیاورم اما مولانا نور صافی است عالم ارجمندی مثل او چطور تاب حرف های جاهلان را بیاورد بیهوده نیست که حضرت پیغمبر فرموده است در این دنیا به حال سه نفر دل بسوزانید. شخصیت عالی مقامی که مقامش را از دست داده، ثروتمندی که ثروتش را از دست داده، و دانشمندی که بازیچه دست نادانان شده. با این حال میدانم این تهمت و افتراها در دراز مدت به نفع مولاناست، آماج شایعه ها و بدگویی ها شدن اگر جان انسان را بسوزاند و بر نفسش سنگینی کند در اصل مانند هیزم آتش سبب می شود زودتر پخته شود مولانا در طول عمرش جز حرمت و احترام ندیده عالم و فقیه و زاهد بوده نمیدانند آدم چه حالی میشود وقتی دیگران درکش نمیکنند، تحقیرش میکنند و مدام از او انتقاد میکنند. هیچگاه رانده نشده، دیگران بر نفسش زخم نزدهاند حتی خراش هم بر نداشته. اما مگر بدون اینها میشود؟ سنگهای بدگویی هر قدر هم انسان را بشکند و زخمی کند باز در نظر اهل حقیقت به قنچه و گل میماند. قاعده سیوم صوفی حقیقی آن است که اگر دیگران سرزنشش کنند ایبش بجویند بدش را بگویند حتی به او افترا ببندند دهانش را بسته نگه دارد و یک کسی حتی یک کلمه حرف ناشایست نزند. صوفی عیب را نمی‌بیند. عیب را می‌پوشاند.